شیطان را دیدم نه رب العالمين و الله علی رسول الله و آله طيبینا و الله اكبر ان شاء الله جوری به رشوید و این آیا هیچ اتفاقی رخ می‌خورد؟ از کل مرhumشش شروع کردن اتفاقا که ظاهر رشوید یک رواجیه که ساده شن جاییه ظاهرشینه که گرفتن پول ور و برای بعضی فرد باز هم رشوه است یعنی حتی اگر پول اصلا پولی نیست من برده. یا در احکام بود بعد مغموش افرق نزن به ها در معنا بله خوب ظاهر و تفسیر رشد فلقاموس تفسیر رشته فلقاموس به جب هم دیرو جارن وقت بود حواثم پرس بود که قاموس مالی جوهدی مالی ریزو بودی <تصحنت> سه ها مالی جوهدی یه خود حواثفتی داری پیشنیم شد نه اینجا حواثفتی بود معنام بود قاموس مال فیوزوالیش و شرق احتیال مفصلی داره به نام تاج الاروز مال زبیدی مصری یعنی بسیار کتاب خوبیه تاج الاروز نصافه هم فیلی فوارد داره جزو کتاب خوب در راقتی که فوارده متطبقن داره ایشون می فرمان با آدالمعنا و ظاهر و تفسیر رشد به قاموس به فر جعل که تفسیر کرده به قاموس به جعل این با این معنا هم می خود ایشون نهار کردن در این در بحث هاشون یک مقدار کلمات فعنه در اون کلام لغوی یک مقدار کلمات فعه ها رو متحدث شدن و باز برگشتن به این کتاب لغوی شیعه که شرح احابیس مشکل است، مجموع البحرین از مجموع البحرین نهار که رشقه در اقتال حق و تمشیعه باطله بعد از مصباح المنیر پیومی نقل کردم ما شخص لحاکم او غیره با حاکم و غیر حاکم یا غیره حاکم لیحکمله او یحمله و علا ما ایشون با اون بدل فقه برو اینا را همه را به یکی گرسه و ان النهایه ان نحل غسلت و ادرحاجه بالمسانهه اصلا حضور و ساسه که این سال همه یکی باشه تحجب ازشان هستونم که اینجا عده ای از ماهانیز که ظاهره منوشه خلق تمام دارد. در اتفاق قانوس همینطوره. در کتاب قانوس آمده هم جو. هر رشوه مسلسه یعنی که زمون پس و کس. از اتفاقی زمون پس و کس در عده از کتب دوغت آمده ایسا در بعدی از کتب لغت بخصن رشوه اون پولیس که آدم میگه رشوه نستره. دادن پولیس. ایلت خود پوله اون رشت دادن پول رشتش حالا به هر حال قده هم گفتن نه حرف مناش یکیه قده هم گفتن یکی درست نیست زمش پتش درست اختلافاتی لغویی دارن که آمین به لغویت اما در قاموس تفسیر به جعر کرده درست این عبارتی بود که اینجا از مصباح المونیر مرار کرده ایشان این مطلب را هم تا عروس ارده یعنی سادر عروش از کتاب مصباح المونی. المونی را همشیخ و حال ما معامله کتاب لغوی کردن چون ظاهر لغته در حقیقت باید باید لغت لغت هم نیست حالا لغت داخلی کتابی سنان مجموع از مجموع کبیم اما مالکیه از کتاب نعروف و اهل سنت شافعی شافی ها در مصباح المونین سعی کرده الفاظیو و این کتاب شهر داده، بعضی از معانی لغتی همش اضافه کرده کتاب لغت هست اما در این حال نازل به یک کتاب فقهیه اینجا این, این نقطه اون... که امروز مخواهیم توضیح کردیم این نکته رو باید دقت قصر کنیم در یک معنا با عنوان کتاب لغت میاد اما در حقیقت اینو نوع استلاحه استلاح فقهیه که الان توضیحش داده میشه این مطلب رو هم در تا عروس آورده ما یعفیه شخص پس بنابراین این استلاحاتی که در اینجا آمده اینای یکی نیست که ایشون فرمیدن این بی یک معنا نیست اولا اون روایت و رجلن احتاجن ناسو علی به فعلی پساله هم امرش ره این باشه احتمال داره. یعنی مراد امام این باشه همچنان که رشوی ای که یک طرف به قاضی میده حرامه اگر بگه نه بیا مرحله ای میبره اون طرف میگه پول میخوام اینو مثلا نه اینکه پولی که آدم برای بنده فر میگیره این که شیخ فرمیگه سوال رشوه بضیه فره این رو ایشون شیخ میگه این ممکنه صحیح باشه یعنی همچنان که قاضی اگر بخواد بحث خصومت بکنه به نفع یکی حاکم کنریش میاد، اینم بخواد بعضی کارها حاکم کنریش میاد، این اولی ممکن است تندزیگ باشه، فسله هم سردم ای باشه. ابزاری که در قاموس آمده جوله، جوله یعنی قاموس، پولی که زم بگیره، حالا مز توش آن کار جوله این پول دریاس کی؟ چه قلمی این وجه دریافتی به با عنوان کار معین باشه یا نباشه. جول اصطلاح در دیالو، اونجاست که کار معین نباشه. یعنی اینکه بمصداق فلسفی صد تا بشه. اون که در دقیق بذابین میمگه در ضمن یکش آخرش کجاست. عمل معین نیست، اصطلاحاً جُعل بشه میاد. اون اگر تفسیر خوب رو بر اون تعریف که این های رو در نظر نگرسن اگر تفسیر شی جول قبول بکنی ریشوه و اگر قبول رو... ما اگرش برداشتش می‌داد اگر قبول می‌کنی مثل صاحب خاموز دقیقاً یک مفهوم عرشی رو آورده چون یک مشکل کتب لغت اینه که این لغوی اون مفهوم عرشی رو از مردم گرفته یا همون مفهوم عرشی رو از زاویه فکری گرفته <تصفح> این مشکل بزرگ لغت اینه. رو اینه اینا کلا توضیحش ارزی اگر فرض کنیم که این لغت باشه یعنی از عرف این معلوم میشه مطلق پولی که ما رشو بشه نمیخواد در باب قضاوت باشه نمیخواد کار اداری باشه فرض کنید یک دکان بقالی ساعت 8 دکانش باز میکنه. شما میشین این هفته میگی باسه نمی بازم. یه دست چند تا دستش نمیذارم باز بازم این اینم روش میشه فهمونید ظاهرا به فرض بکنید شیخ ظاهره رو دیگه که من میتونم این حالا بی می‌کنم با من یاده می ایشون میگه شما هر چی پول بخواهیم بریم که یک کاری برای شما نصم ششبه هست دکان بقال بخواهد زود باز بازه کنم باز. بگیرم روشیم دلیل قانون همین یه چنین هر رشوی از جور هر من از عبارت جوری نمیفهمم. شما می‌خواد یک تفسیر عام نه فقط به کاری و قضاوت نداره اصلا کاری به نظام اداری نداره، هیچ چی نداره. یه کسی اینجا تو مجلس نشسته، شما بهش از جا خوش می‌خوام نه، یه پولی بهش که این ازجا برام بشه. این میشه بشه. شما به اصطلاح معروف با دادن پول به مطلب خودتون برسین خوب دقت بکن. نمیخواد با به قضاوت بشه، نمیخواد نظام اداری باشه. جالام جالام هرجاله عمومی چون اصلا مشخص نیست اینجا هم اینجا من از عبارت خاموش این نمیفهمم خوب دقت اشکال داره میشه نه فقط اینکه فقط به اصطلاح معروف اشکال داره اشکالش که حال قاموس داره لغت میگه واقعا لغت اینطوره. حالا ممکن واقعا اینطور بشه لغت داره نه که اشکال نداره هر کسی به کسی پولی بده برای که مدابش انجام بده این اسمش رشته نیست برای اون نظام اداری نباشته بله احسان باشه. باشه اصلا بگیم رشو یعنی اینه اگر یاد مبارک آمان باشدیم حالا مقنی بیخوننی میخونن توان فرستی زنبولیه فر اضاهای هیه و اضاهای هیه هی ها در زیرش که اون قصیده رو نرمی کنه خود مقنی داره و غیره اعراب داده شده اونها داره. خب بینا رشوه داد و اونجا دیدون عراقیان چون خب مولوی هست اساس شیعه هست شیعه مکتب اهل سنته با کسایی که شاخص مکتب شیعه و با اختلافشون دکتر اون اعراب چون اعراب کسایی که عربه موضوع عرب اعراب بودن تایید کسایی رو که نه رشوه یا در موقع میگه که اون رشوه داده بهشون پول دادن و که رشت همی که گرفتن نه یه مدن ترفخزو کن اضاعه ها بختم ارگاه گفت خب بگیم حالا شما اونی ارگاه همین شما عرب موطنی تصور بکنی اضاعه ها اضاعه و هیه دیگه اضاعه و ایه ها منو ده بختم نه ارگاه و ارگاه رو که خواهی نه طریق نه <تصح> اگر بهشون دادن که بگیم این حق با هست اینnabla الحدیث در مناسبتی بود که چهار شارع جا نمی دونن اگهام در تو چون دردم به ها که در قضیه صحیحه از ارعاب و تحزیه که بود در خونه ها پول میفرستاد از من فعلا جای از نمی فعلا جایی جای گورگیم جای جای جای باشه در خونه دو بودن در خونه خانم. که اون شیر دیگه اثر شما نمیزه. رشوه طبیعی رو شیر می‌کاره بودن. یعنی پول بهش دادن که بیاد به رعایت اوضاع دولت بشه. واجی گرفتن میشه؟ آها، تقلید پوله. باج هم نیست، یه چیزه. پول، پول دادن ها. هر شما هستش رو من از عبارت خاموش اینو میفهمم. نه سوال برای مظرفه. اصلا رشوه شما هر کار رو بخوین انجام بدیم با پول. پول بدیم که انجام بشه. این پول پیش رشوه. شان منو چه پسیدی؟ من از یا رشته لازم نیست که از آن باشه لازم نیست نظام اداری باشه یا خیلی را آدی پول بده این کارشون انجام بگیره اون پولی رو که انسان میده اسمش رشته روشن تو من از اولت کاموسی منو چه من که از اولت کاموسی عسكری در اونجا انصافاً این پولی که اوازه برای بیعت با ابوعباکر اسمش میشه ریشه چند یا چهار اندازه هست. اوه، از روزا که بحث واردم کوندین، مثلا عبارش و ذکر دیگه صفش شد. عسكر من مثلا علم خدا خودم می کنم. اگه اون جای دیدن، جای خودش تو غیر از این بلد فعلا جایی اینا در تاریخ مدینه منبره که مولا ابن است که توان خودش و امویو خلاف هاست در اونجا هم غیر از اونجا هم من نگیدم اگه جوی دیگه آنگیدم که قبل از رفات پیغمبر اکرم 800 هزار گره هم برای پیغمبر از بحرین آورده بود، 800 هزار گره و پیغمبر در فکر شدن که یه به طول مالی برای قرار بدن که فوت می کنن ما در هیچ جای تاریخ هم که این پول کجا شد 800 هزار گره که واقعا جنگ بعد این جنگی بود که اون هنگزام دادن قنام هزار این هسته هزار از بحیمه بودن ظاهرن تو همه قصه حل شده تو همین و این ساید زهارین تا این دوتا رو من جایی دیگه ندیدم، یکی در کتاب ابن شبه دیدم یکی هم در کتاب ابن حدید اونجا تصریح میکنه اشون دو نفر که اصلا به خانه پول الان حاله این تفسیر رشو قاموس به جول و الیه نظر و, و سانیه هی سپس در افیحاشی اصل از ما یعظور هم متحكمان. خیلی عجیب هشه رشو ما یعظور هم یه چیز, چیز دیگه هیه. ایشون گفته رشو ای که دو طرف بدن دلن. نه اونی که در یه نظر تحجیم از مرحوم شده نظر میشه چیز دیگه این قضاوت قضاقات برسید و در جامعه مقاسب جل من المتحاکمین رشدتون نه جل مطلحن رشدتون ایشون هم اونجوریه بیاد تا آموس آموس بعد از آموس همی در نهایه این صدقار این نهل وصل الالحاجب مصانعه من به نظر نهایی ابن عصیر با قاموس یکیه الهسل الالحاجه حاجه رو مطقه میگیریم الهسل چیزی که آدم رو به حاضر میکنه سنه رو پول روزه به که قبل از رخ باز بکنم اگه پول میده باز نمیزونم این رو رشو هست پس به بر این از مثل از که نهایی رو بحث از دارم به که بیشتر تفسیر برده به اطلاع تفسیر لغوی داره همه از رو و در کتاب مصباح المنیر داره ما یعقیه شخص دل حاکم او غیره لیحکم الله قول یحمل هو علا مایوری احتمالا این هم مرادش همینه اگر لیحکم الله باشه باب قضاوتو یحمل هو علا مایوری همین مقره آنگی کنم دیگه یحمل هو علا مایوری اون چیزی که ما انجام بده پول بشه میدم اون چیزی که ما انجام بده در دکانه باز میکنه تا اینجا روشن شد که بعید نیز در این جلب متأخر، یعنی متأخر مراد ما از متاخر از جبه از های اصحاب که تفسیرشو نداره این متاخرین اصخاب مثل جامعه هاست و اینها که تفسیرش ورده این معانی لغوی در وسط به نحن سنت استعمال شده تغلیلی معنا رشوه مراد مطلق پوله که انسان میده. بیا اما توی مثلا مجموع البحر نوشته علامات الصنع الرشوه لا فی ما یوسعر به الى ابطال حق او این خیلی فرق اما خب این شو چی؟ رشوه چیز برای ابطال حق بود. نه. لازم نیست ابطال حق باشه، تمبیه باشه. این شو قلمو رو مراد ایشان را اگر بخوایم بگیم که اینشالله ایشان درست مسطح کرده عبارت شدست استعمال کرده در کتب فقهی این قید کتب فقهی روزه هم درسته در کتب فقهی الان وقتی ما نخونیم عربشات حرام به ذهن ما میاد اون پولی که برای افتاد حقیم افتاده هست. این خلمات و تو میگم این مشکل که این تو استعمال کجا در کتب لغت یا در فتاوای فقه انصافا اگر عبارات ایشان رو بذاریم به فتاوای فقها حق با ایشانه در عبارات ها غالبا روش در این معنا به کار برده میشه اما معلوم شد بارش ما از عبارت لغوی رو خوندیم مطلق پولی که انسان میده که چه کسی کاری انجام بده بده گرفتار فهمید مطلق پولی که میده حالا میخواد اون کار حق باشه باطل باشه دادگاه باشه دولت باشه دکان باز کردن باشه هر چیزی باشه به طرف اینا بود توی این معامله برای ما رو چه کرد پول میده نیا اینجا بشه آقا معنی استلاحی ها لغوی که تو خب نه بگیم من استلاحیش این نه لغویش لغویش این در میان کلمات بقا که حرامه تو باب قضا یا مطلق نظام اداری میشه معنی اصطلاحیش قیل از معنی لغویش باشی امکان داره این این نداره. آه، آه، آه. اون اینجا این صحبتی که الان مطرح میشه اینه صحبت اساسی یک آیا این کتب لغت که مثل آموز یا حتی مثل نهایی که اینها نوشتن آیا واقعا همون مفهوم ارث ارتعام رو نوشتن واقعا از لغت گرفتن یا اینها تابع یک مکتب فکری بودن مکتب علمی بودن در اون مکتب فکری معتقد بوده هر کلی که داده بشه در یک کاری این رشت من رو برای شما کنم که لغت بعد از فیخشیم گرفته این ای نفته را هست... عرض کردنم دست حجیت قول لغبی که در کتاب اصول ما آمده غیر از اون جا که اصلاح هم حجیته مشکلش اینه که در دنیای عربی لغت بعد از اسلام تنظیم لغت این تنظیم لغت در قرن دوم از نیمه های اول قرن دوم مثل سیبه سده اشتا زفاقشم تنظیم لغت در قرن دومه در هر دوم هم اختلافات فکری وجود داشت، هم اختلافات کلامی وجود داشت. و هم اختلافات عقایدی وجود داشت. مثلا اهل کوفه که شیعه بودن گفتن خمسه و برسکن با برای تاییده. اهل مکه که سنی بودن گفتن برای فرضی قبول ندارن، با برای تایید نمی‌کنن. اختلافات فکری، این فرقید در کتاب مغنی، اصلا دیدم واژونه هم آیا مبارکه ندار ها در ممونله هموار هم تو هم بند اون کنل برای مقابله نمیگیره. چون چون عاشقی مسکه وارد نیست که هواب عغاب به عنوان مقابل هست. اون خب ظاهر خب خب که مقابلگذاره کرده. اشترام در مام این انوا هم ازان بند در مقابل میششون مدن کلامیش که مقابل قبول ن. میشونین چون تو مدن کلام مقابله به قبول نظره با اینکه ظاهر آیه ای مقابل است بار رونم مقابله نمیگیره. این توضیحاتش صادقانه بودش این مشکل در کل لغت لغت, لغت, لغت, لغت, لغت, لغت, لغت عرب هست یعنی چون تنظیم لغت عرب اصولا بعد از مبانی کلامی و بعد از مبانی فقهی و بعد از جنگ و جدال‌های تفسیری یعنی بعد از اینکه این, این چهره‌ها بحثه شدن اختلافات آمد مخصوصاً یک مقدار اختلافات ما با شمشی و خرمزی و مثل امامت با این مسائل روبرو بود بعد از اینها تنظیم لغت شد این یک مقدار ایجاد می‌کنه مثلا خواهد آمان در کتاب بی مرحوم شیخ و قلمای بعدی ما از کتاب مصباح البی فلاغه کما فل مصباح فل ارش کما فل مصباح از است و به مال بمال. خب این شاید نظر خود شوافق باشه که در حقیقت بی خوابیده که طرفه مال باشه چه اونجا بحث میاد اگر یک طرف مال نباشه مثلا حق باشه بگه فلان حقه در مقابل فلان مال جلو جلو کردم آ این ب هست نه زار نمیگیم بی نیست خب این شاد معنی فقهی و این تفسیر لغتی را مبادله حق به مال خب دقت بفرمایید ظاهر عبارت این است که مبادله تو مال به مال این مبادله تو مال به مال معناش اینه که اگه یک طرف حق بود این بی نیست بی بود مبادله مال به مال میشه خب ممکن است این رأی این آ که شافعی مکتبی رأی فقهیش این بوده و الا مبادره تا دوستا چیز که بیشه مال باشه مخاید حق باشه منافع باشه مبادله بیره به, به, به؟ قصه همینه شما لغت رو قبول نمیست لغبی؟ بب نیست اما هیچون حجر قرار دارم شما باشه وقتی فکر میکنیم لذا یک آیا این معانی در خاموس و آمده از عرف گرفته معنا یا تأثیر کرده؟ ما الان در تفسیر دقیقا مجمال بره یه قال عمل الاتی ابطال حکم او تفیجر به اون میگه بطلن دو تا مابن جزء دیگه میگه در این اینجوری آمده پس به معنی شینه اون آقا میگه نه هر پولی که شما ببینید اسمش روشه رو نمیشه خالی از این گنجاشتن باشه حسابو فهمیم حسابو که خیلی متأخر خودش کم داره خودش مثلا نهایی رو چند تا کتاب با هم جمع کرده استادش خودش تقریبا پنج تا کتاب معروف شده اولش خیلی مبانی کمی داره که خودش مبنا شده نه هر کدوم رو که بشر دیگه بشر رو یه راگی داره راهاشو خیلی بساسی میشه علم ایقوفی نیست که توش گیر بکنی. این ابن عثیری شخصیتی خیالی نیست یعنی به عباراتی اخرى ما حرفمون اینه که نه صاحب قاموس نه یک شخصیت خیالی هستن که ما چشمه دستمون اینه ها بدون هر جور و چه شلونو باز میکنیم چرا واشنگتون می‌گویند کجای اینا رو تعبد اینا رو می‌خواد تعبد بده. یعنی این؟, این دست دست دست چی نزن. هر جا عقب می‌چاره. ای که اینا چند شخصیت هایی که در توی تاریخ بشریت اینطور است. به استثنای انبیاء الهی که ارتباط با خیلی دارن، همه ما بشر دیگه هم دینیم. داریم، داریم، ما محدود زندگی. همه محدودیت این یه محاسبه این احتمال البته حرف بدی نمی رسین ما خود ما هم جزء ابن نبنا و اورش و, و, و اینطور نیست از کاری ریخامیم حرفا اون نظر این حرف حرف بدی نیست پس یک باید تحلیل بشه که این حرفی که اون گفتن ما رو دو باید ثابت بشه که اگر در روایات رشو آمد همینطور که که همی مرحوم صاحب مجوال ذهبن گفته چرا توی اصطلاحا مثل دا به اصل لغت یه معنا در اصل لغت معنی این مشکل دوم. مشکل سوم که از این خیلی مهم تره و اون اساسی تارا که اصلا این بحث ها مصمر سمر هست من هم همراه کتاب مکاسب بحث هایی شما رو مذرم اصولا این مبنید و اینکه رشوه رو ما در روایات داشته باشیم این بحث این درد میخواده که یک مفهوم لغوی و آم داریم یک اصطلاح خاص داریم اما اگر آماز این در روایات احلوی درستان نداریم لعن الله راشوی و مرتشین هست اصلا نداریم اصلا رواسه رشو نداریم این رواسه رشو مثلا فسه عله همون رشوه این تنزیر اصلا در حالا زنیده و ظاهر این فسه عله همون رشوه قطعا مراد با قرائن است که ما بخواد تحکیب بکنه چیز حلال میزید بخواد تحکیب بکنه این با مطلق جولن نمی این مردی میشه فسه علام همون رشده این فسه علا حرامه، حرام ها. اون توی ذهن آدم وقتی میخونه رو آه. آه. با تیز از همون که با قلب آسسته همون فسه علا همون رشده که انده همون خواهد بیگه فسه علا همون حرام حرام پس این با مطلقه جو علم و بس هم هم ضعیف این راه سوم خیلی اولاً مهم مهدیینه ما وقتی می‌یازیم خودتو به لغت و این تفاصیل لغوی پیدا کنیم که در متون روایات ما، متون روات صحیحه این لفظ وارد شده رو شیراخیم مثلا قسم از قدماعی از حال ما مثل مرحوم هلوی مرحوم هلوی نوشته که بله الا لا داکان علی حکم صحیح فلا یهرام علی موتی بر موتی حرام نیست بر اون آخر که قاضی حرامون هم از باب اخلاق اجت در واجبا بلکه کسی که پوله میده این رشونی این درگر در نوع تفسیر فقیهیست برای رشونه ایشون معنا کرده رشون رو بین معنا پس اگر ما باشیم مقتضای قاعده انصاف قضیه این بحث لغوی رو به این سه امتر کردن شاید خیلی کار. چون در روایت ما داره وهمم رشاپل ها تقیید داره اون روایته که لعن الله و راشی و رو ما نداریم. اهل سنت خور بحث بکنن در رشوهش. اما ما نیازی بحث در رشوه نداریم. اصولا اون چه که آمده آنوان رشایفل حکمه که رشایفل حکمم هم به که مرحوم ابن الویل تحریدن به قراره اینطور میفهمیم. پول بده حکم لفعش بشید. نه پول بده که قاضی بقید حکم کنه. اما اون ابتال حق رو تمشی نیازی با این طرح برد که آیا مطلق جمله است یا در خصوص این ما نداریم یه نظرم بر طوزی هست بله نیازی جایزه لایزیکن تا هم اشکال نداره اون حرمتی نداره اون بعد مرحوم شیخ روایت که نازل شده در مفاهیم اورکی نازل می شده همون چیزی که مردم زشت که در اون زمان‌ها در شده که حرام هست یا حلال است، همون چیزی که مردم اون زمان می‌فهمیده همونی می‌خواستن بفهمونن. وارد نشود به شرع الهی. من بحث هم همین نه کلاً در مورد هر لغت. نه نب... می‌دونن هر لغت فقط در شده. نه فهمو نیست که پول لغوی ما نمیدونیم نمی‌دونی. باید اصفات بشه. یا زمان این باید اصفات بشه روشن بشه. اگر این صدختنات نماشون صد ف تعالی هم رشوه ما را ما برای پیاده کردن این لغت که برف خود تیره اقلبی در ما ببینیم ما مجموعه قرائن جمع کنیم عرف خودمون هم عرفای تاریخی رو چند نکته تاریخی برداشت می‌کنیم نکات تاریخی جمع می‌کنیم روايات جمع می‌کنیم ف رشوه مراد ف مالا قران با هم جنب میکنه ما نتیجه بحث این وقتی که می آمد اگر در مورد لا تا خدا باشه کهم و الیگ شد اگر این بود غران لا راشد راشی ال متشفی فن اگر این بود خب بحث از رشته دعنا داشت اما وقتی این تعبیر ندید چه بحث بود نه که این بحث معنا یعنی لفظ در بعد آمده چرا ما در ادله داریم دو تاست شافل حکمه تو جلوبه های در خب کنیم. ما دنبال این دوتا آنما بایدیم خلاف بایدیم نه این بیا ها نه کل <تصدق> نه حساب داره هم کجا اگر لفظ در به باید آمده باید دنبال لفظ داریم مغنی مغنیه در لفظ آمده باید دنبال شد غنا آمده در اما در جایی که یعنی این بست در حقیقت اهل سنت مزرح کرد چون تو به بایدشون آمده این واسه کلیت هر ماشینیه گاهی ما یه عرفی داریم در فقه شیعه که اهل سنت نداره اشتباه نشه برای سلیه هر کدام خوبه چرا چون لعن الله الراشی و مرتشی دادن اما برای ما که من به واسه نظرش شرط قرار بکو مگر این چه اینطور بگی کسی اگه شما هم حرمتش رو بین مسلمان ها مسلمه به قول و آیین افلاق معقد اجباری این معقد اجمال لفظیش رو ثابت می‌کنه مگر یه چیزی و, و, لا و, و بها ما تو روایه اون سمون رشا فی الحکم دارم مطلقه نه نه نه نکسون مجیده روایه فیلیم آیه و انوادکم در و ما دنبال رو حالا مطلق جول یا مطلق جول نباشه و تود رو باها ما دنبال این هست اشوال جاهلی چقدر می کنم رو تو بزمینه یه رو خمک میکنم چه اما مشکل این چون بله مثلا اینجا پسه علامه رشیر تو به ود درست اما اگر آمد ار رشافل حک موضوع شد رشافل حک موضوع دنبال اونها رشافل حک نده حالا رشیر مطلق جل باشه جل باشه نه باشه این چه دعایی هم که دنبال وسیعش بگرده و لذا ما اصلا در عبارت شیخ هم من همه بله شیخ رو بله نمیخونم ایشون میگه او یقال این یقالش درسته این در مراد نه مراد الجل نه مراد جل هم میسی. این تیجا درست نیست بعدم ایشون متعرضه یک معنی شدن که در باب به اصطلاح حرمت عقض برقاضی اون حرمت عقض برقاضی مسئله دیگریه اون شد از باب این است که قضاوت جزش اون اجتماعیست و باید از بکر ما داده بشه افراد بشنده اون نقطه دیگری نقطه داشته ایشار بعد ایشان متعرض به همین مناسبه متعرض بحث آیا خاضی با صورت احتیاج میتونه پول بگیره یا نگیره بل. و لعله هم دل احتیاج به روایه احتیاج الان نوعه اینه قالبا قضاد مثلا چون احتیاج دارم و به آخر احتیاج رو زندگی دارم بعدم ایشون میگه ولی اطلاق ما سقط در فیارات امار دیروز ارز کردن رویات امار اطلاق روشن نداره که مرحوم شیخ ترموده برغم او استدل علی الامر به صحیحه ابن سنان این البته این الامر نه در خصوص خزای اصطلاح چیز لو عنوان رشوه در باب اخذ اجرت از قاضیه قال سئل ابو عبد الله عن قاضی بین طریقه و نسخه و نسخهی قریتهای یحق قضا على القضاء الرزق بن السلطان قال لا یکسر امام فرمود که این س این معاید همون معنی منه که منها اوزور و قضا جمعه از جمعه مستقله نیست این گفتن پس گرفتن پول از به اصطراح طرف این مخاسمه مطمئن حرامه سوان حکم به هر عرب باسه خیلی عجیبه نگاه کاروان به نظر ما میادید قلم ها به یه دلیلی تمسکت از واب زیغه تنابه رید خب این خود مروم شیخم شماید ظاهر روایه کمه قاضی منصوبه من قبل سلطان از ظاهر فی سلطان جو اصلا اصولاً تعجب از مردم از این حالاتی که تمسکل بحث ما در اجرت فاینی اون جایی است که قاضی از متخاصمین میگه توی روایت داره یعق و عبدالقضا انرس بضغی موامنه میگه که این چطوری اجرت بگیره ممکن یک موامشه کسی هم برای اینکه جان قضاوت نکنه پول میگیره به عنوان منصب پول میگیره اصلا رفت غیر از اجرتال غذاه این دو تا به این دو غیر از یه خدا هر این رفت مورد شهریه هست ما میگیره این غیر از مسئله یه اجرتال دو نفر مشکل پیش عامی آمیه آبیه آبی آبی آبی شما غذاهاتون این شما به ما غذا راستون پول نمید تا پول از زمین فاصو فرونده نمیخواد با این داره که از سلطان در مقابل هر خرده پول میگه کالی یوج در ما سالانه شش ماه ممکن از ده ماه در یک تا اصلا قضاوت نکن کسی هدیت به قاضی بده نکنه بعداً بعد اون خواهیم گفت که اینشان مجموعی روایت هست که مای و ازمایو آدل لایکن و سختن قطعن بعد ایشون اصلا این حدیث مبارک هیچ ربطی به ما نحن و به اصطلاح نداره بله علایه حاله بعدم ایشون دنبال یه مرده های دنبال بخش قضاوت رفتن اگر به اشتران جورتی دیدی از باشید با همه روزم هم چاگه اونجا برستر بوده نه من سه اینجا اگر این فلط که هر نیست اونجا قرارداده اونجا شون به اینجا قاضی بشون به ماهانه میموند این جوال نیسته تصدیسته این شون یا اونجا تصدیشون اونجا دو سر یا مثلا در تو یه دستور همش سعی করে مصالحه بکنه میگه مصالحه بین اهل رواب باید بعد میگه نریه دستش بعد ایشان مرحوم شیخ, شیخ. من خیلی حزم می‌کنم خلافاً به ظاهر و محکی قاضی منن جواز و که جالب رزقه برای قاضی این بحث ایشون تو هم بحث اصل وجوب کارونن ایشون این روایت رو در این مناسبه از روایت حمیداد فبین هم را برنده برنده من الان سر اشت روزه هم نیست الگه هم خواستم روی من البته بگی من حالا اصلا در واسه می بخواد بخونیم این جراحات خون ببشه ظاهر شدیه که اگر بخواد به اینکه که اصلا و دریافت بکنه با عنوان بر و احسان اینها مانع نبله و الله بر یک مردا راجع به بحث قضاوت ایشان لازم میشه که این بحث ما اصولاً انجام دادن نمی‌کنیم چون این جزئی میشه از اون بحث‌هایی که ما مفهمیم بین بیرون خارجی شه. باج از دوباره بحث قاضی خود مرحوم شیخ و تفسیرات مختلف تا جزا از اهل القول و اجره و احادث القاضی و عدم فعیل قضا حاله. این هم دیگه این نکته خاصی ندارن برمیگرده به بحث قضا که اون بحث قضاوت رست رو باید در محل به اونچه اون که اینجا مراد شیخه که مرمون شه احواس قضاوت رو هم بین این مفتر مفتر مفتر نقصش اینه آیا اخت اجرت برای قاضی از طرف این رشته هست یا رشته نیست این سؤال انصافاً عباره شمختلفه نیست طبق بعضی از معامل رو قدیش رشوه باشه اما یا ها باید بگیم حرمتش که این نیست یا اصلا بگیم صدق رشوه هم مشکله یعنی به نظر ما مطلبی رو که بعدها مجموع زهرین رو فرارسه این مطلب خیلی متاخر بر سیزده همه ای این مطلب شاید الان که شما لاغل ارفیکله که ابتال حق و تمشه باطل باشه در نتیجه بحث اخذ در عمل ارتزاق و بیت الفیض من بیت مول قرار اشكال تجاوز ایشون زمان در بعد بحث اشاره کن بحث آینده ان شاء الله تعالی این بحث رو به صورت علمی حالا یکی اخذ اوزار برای مقام قضا ان شاء الله عنوان بشه به عنوان اینکه آیا از باب واجبات میشه اخذ کردیم. یا ان شاء الله تعالی در محل خودش خواهید گو آیا به که بعضی از موارد عدده خاصه داره وجوهی رو اقامه کردن در اینکه اصولاً این نکته فنی اینه این بحث ها نقصی فنیش دو سه نقصی هست. یک نقصیش این اشراعی رشوه برمطلق بزلمان برای خاضی سر می‌کنه. میکنه این نقصی پرکی اسمش میسه یک نقصی عمومی هم داره. این اصلاف جرد رشوه نقصی عمومیش به لحاظ خاضی اگر فرض این ق این شخص فقط تنها مشتهه ده و قاضی بشه آیا میتونه اخذ مال بکنه برای غذابن نه به نفعیلیکی برای اصلا این اینشالله وجوهش خواهد آمد وجوهی زی که خواهد تو بکنه اصولم اون نقطه فنیه اصولی اینه که اگر بخونی آشاش روش بکنید اینه بحث اینه که اصلا خود وجوه توی مقامه اعتبارات قانونی با اخذ حضر تنافی روید اینا یعنی اگر یک چیزی واجب شد انسان نه معناش یک انجام ده. این که این بحث خب حاضرش بله هر وجودی. عینین چه؟ آها، اصلا. ناز وجود بعضی وجود، بعض وجودی که عبادی باشه، عینی باشه. چه این تقسیم پس این بحث بحث لطیفیه. چه الان رضا خوب در قصد بکنید ما دو سنش بحث داریم یه سن بحثه ایست که کلید و ابحاظ اصولی از اینجور هم بحثم فقیه به شون افضا اجرد مدرگرد پس این یکی اجرد قضا به لحاظ عنوان رشوه الان من متعرض نشد مرون شیخ این متعرض شدن ما متعرض این بحث نشدیم بداشتیمش توی که خودش فقط نکته فهمی آیا صرف رشو میکنه یا نه سوال این صافت به لحاظ بعض از عبارات لغوی ها و به بعضی از عبارات نمه هم ساره میدن لیکن اران ارتکاز ما نمی ساره این من حرف مجموع برای اینو لاعقا با ارتکاز فعال دیتر میدنم شاید ارتکاز عرف آم همون معنی باشه جول لیکن این صافت تو عرف متشبعه وقتی بیان رشوه داد این داره تمشه باطن ارتکاز اینه اما پوی گرفت رفت و حفو بکنه این رشوه بشه نه جایزه نه بحثی اون که جایز, بحث جایز نروشه. پس بحثی که در که من برد بحث کردن بحث نکته بحث روشن شد نکته بحث نیست که اخذ اجرت آیا رشوه هست نه بعضو میگن هست و انصافا عباراتشون مختلفه حق میگه از واژه از عبارات جرم نه حق اثر رو که رشوه نیست اما هم نیست به خاطر عقض اوجات بر قضاستون واجبه متعیم باشه برش کسی قاضی نباشه یا حتی اصلا متعیم نباشه کفایی باشه بازم عقض در بر واجبات که انشاءالله این بحث رو تو نوع خامس انشاءالله. اون نوع خامس بحث کبروی چه اینه هر جا این بحث قانونیه بحث لتیفیه هر جا وجوب آمد معناش این است که اون اول باید مکیانی باشه دوکان واقتا کارو تک میشوه. این چه این هر وجود با این یک بحث قانونی. این بحثه یاد موارثه باشه ما چه قرارمون بوده این بحثه مثلا ما این بحثه در اوان مطرح کردیم. وقتی گفت در بازستونش چند تا مطلب خابیده. این که همین چه هم یکی گفتن بحثه اینو بحثه. چیزی یکی این که هم بحث هست و همین که این در باز کردن در ذنبه میشه اگر من آن ترار کرد دو ساعتی با هم هم با در بازتی تو ذنبه ش میمونه قضا هم این همینجور مفاهیم. یکی این که این عمل باید تحقیق ادا کنه خواهد اسان تو خود در کن. به هیچ کسی که اگر تعلوی کرد من هر راهی رو دارم باید انجام بدم چون انجام. ولی زمان استن علی مصلات اینه نماز تو جامعه باد خونده بشه اگر مخصوصا حاکم باد راهایی برای انجام بده که نماز انجام بشه. استن مفهومش اینه. این صورت که دیگه گویی از امضاء برند. یکی از دفعه میشه که این کار مرجانی انجام بدهید. این شده شما به در این دروازه مفهومش که باز طول نگیرید. الزام رو که من میارم باید حتما این مجنون بشید. از کنم. میخوام طرح بدم که مشی که از این زیاد دارید الان خیلی از این مفاهیم رو ما در اونجا مطرح کردیم آیا توی دروازه خوابیده که مجانی؟ نهی که زار داره ازش میگه اصلا وجوب معناش اینه حق نداره کون بگیری اصلا وجوب این جل مقتداشی نستی این کار به نحوه مجرمی این تو نور خامس انشالله هم برگیر پس تو بحث قاضی یکی عجرت رو خاضیه عجرت رو خاضی دو بحث داره رشوه هست یا نه عجرت بر واجبات جایز هست یا نه دو تا بحث داره یکی ارتزاق قاضی ارتزاق قاضی چون در روایت معروف امیرالمومنین وارد کشته داره که به قاضی اینقدر پول بده در بیرون مال که گداصفت نمونه چشمش رو دنبال مال مردم باشه لذا ارتزاق رو چون فلا اشکار بی نه ارتزاق و نه مسئله عهد و عهد بر یعنی اونجا قاضی رو میگن که منصب اجتماعی اجتماع اجتماع به این تعبیر اداره بشه صلی الله محمد و Oh